دوستان دوستانی که تو این جمع نشستن همه تا حدی با موضوع کاری که یه پزشک انجام میده یا یه مهندس آرشیتکت یا حالا مثلا مهندس عمران آشنایی دارن امروز و تو اینجا میخوام شما رو وارد فضایی کنم که ممکنه خیلی ازش اطلاعات نداشته باشید اونم در مورد انجام مطالعات حیات وحشه و نهایتاً اینکه این مطالعات چه ضرورتی داره و نهایتاً به کجا میره کیسی که روش اینجا present دارم در خصوص جنگل های خزری هست و با تکید بر پرندگان این جنگل ها امیدوارم که بتونم تا حدی شما رو با این فضا هم آشنا کرده باشم ببخشید من پیشاپش عذرخواهی می میکنم چون اغلب اسلاید های من مطر نداره مجبورم به این دست نوشتم نگاه کنم از این بابت پوزش میخوام شاید همه این دوستانی که تو جمع هستن تجربه اینو داشته باشن که به جنگل های شمال ایران رفته باشند حالا سالی یه بار دوبار یا بیشتر. تفریحشون رو کردن به دریا رفتن بعضن ممکنه آلوده،, آلوده،, آلوده آلودگی رو ایجاد کرده باشم با ریختن زباله یا کارهای دیگه متهم می‌خوام ببینیم این جنگله اصلا چه ارزشی داره توی تصویری که می‌بینید یک پهنه بزرگی به نام ایران که تقریبا 90 و هشت و نه درصدش مناطق خشک و نیمه خشک اون بالای عبروی هست مثل یه ابرو سبزرنگ که اهمیتش اینه چشمای ماه برای کشورم این مناطق که به نام جنگل های خزری یا جنگل های هیرکانی ازش یاد میکنن یک کمربند ممتد 800 کیلومتریه. که از تقریبا آستارا شروع میشه تا گلی توی گلستان امتداد پیدا میکنه این جنگل ها به نوعی مهمترین جنگل های برگ نه تنها در منطقه بلکه در نیم کره شمالی هستند قدمتی که این جنگل ها دارن تقریبا 25 میلیون ساله فقط عدد و تصور 25 میلیون سال حالا در ادامه میگم ما سر این خدمت 25 ساله داریم چه بلایی سرش میاریم این جنگل ها مسئول مانده از آخرین دوران یخبندان هستن یعنی چی؟ ما ده هزار سال پیش آخرین یخبندان زمین رو داشتیم و چه اتفاقی افتاده بود؟ اغلب نواهی زمین یخزده بود و بسیاری از گیاهان از بین رفته بودن به خصوص توی اروپا منطقه اتفاقی که افتاده این جنگل‌های ایرکانی یا خزری از این داستان یخ‌بندان کلاً معصوم موندن و وقتی که هولوحوش هزار سال پیش یخ‌بندان به قطبین به قطب شمال داشت حرکت می‌کرد این جنگل‌ها اجازه یافتند پیشروی کنند و خودشون برسونن به ترکیه، ترکیه فعلی و سپس به اروپا و به عبارت قشنگی اینا مادر جنگل‌های اروپا هستن یعنی اگر این جنگل‌ها هم یخ می‌زدن، اون وقت ما دیگه جنگل برگ په یا برگ ریزی که الان داریم رو دیگه نداریم. نداشتیم خب می‌دونید مثلاً روسیه خب خیلی جنگل داره ولی جنگلهاش عمدتاً سوزنی برگند به این خاطر که سرما حساسیت خوبی داره توی این جنگل‌ها ما نزدیک 3200 گونه گیاهی شناسایی شده یعنی اگر تقریباً 8000 هزار تا گونه گیاهی برای کشورمون متصور باشیم چلو چهار درصد گیاهان ایران فقط تو شمال توی اون ابرویی که یک ممایز یک درصد کل کشور رو مساحتش تشکیل میده توی این جنگل ها ما یه سری گونه هایی داریم از جمله پسانداران، پرندگان، خزندگان که شاید بشه گفتید، یک چهارم پسانداران، گونه های پسندار ایران توی شمال ایرانن، هستند، 180 گونه پرنده داریم، نزدیک 31 گونه خزنده داریم، 9 گونه دوزیست و 53 گونه ماهی داریم. و تعداد بیشماری بیمهره داریم که کسی نایمده دروش و در موردشون مطالعه کنه. خب حالا ارزش این جنگل چی؟ ارزش این جنگل اینه که دوستان که تهران ساکن میدونند روزهایی که دو سه روز تعطیلات داریم عملا جاده چالوس جاده هراز یا جاده فیروز کو چه خبره حجم بسیار زیاد ماشین که داره میره اونجا و عملا یک عرصه ایجاد کرده که مردم برای تفریح به اونجا میرن و این شاید از نظر پولی حساب کنید خیلی با باشه چون هاذرا یک پولی بدن و برن دقیقا تفریهشون رو تو شمال داشته باشه بحث تعدیل آب و هوا و اقلیم هست که خب اگر قرار بود این جنگل ها و این کوه الورز نباشه اونجا شاید عبری که در جنوب خزر تشکیل می شد تقریبا نزدیک مغولستان ریزش پیدا میکرد. اون تا به واسطه این کوه الورز این جنگل ایجاد شد و نهایتا اون چیزی هست که ما میتونیم ببینیم این جنگل ایجاد تولیدات چوبی و غیر چوبی میکنه خب میدونید بسیاری از چوب هایی که به صورت مرغوب الان ما داریم تو کشور از همین مناطق میاد حالا اگر شنیده باشید چوب راش یا حالا چوب دیگه از این ناحیه هستش و همچنین تامین کننده زندگی میلیون ها نفری هستش که توی شمال ایران زندگی میکنن فقط یک مثال می‌زنم، استان گیلان پر استان ایرانه یعنی از نظر جمعیت تقسیم بر مساحت بالاترین تراکم رو داره و بسیاری اونا به شدت وابسته به جنگلند اگر قرار باشه این جنگل یه روزی نباشه مشخص نیست چه بلایی سر این دوستان میاد حالا این جنگل‌هایی که ارزشاشو گفتم یه سری تهدیدات داره که به صورت کلی خدمت شما می‌گم اول از همه که مهمترین تهدیدش هست تبدیل جنگل به اراضی کشاورزی و اراضی مسکونی هست سال 1335 جمعیت ایران تقریبا 19 میلیون نفر بود الان سال 95 تقریبا 80 میلیون نفر این همه آدم هم قضا میخوان هم جایی که بتونن توش بمونن اسکان پیدا کنن برای همین فشار روز به روز داره به این جنگل ها بیشتر میشه من فراموش کردم بگم مساحت کل جنگل‌های خزری یک میلیون هیزده پنجاه هزار هکتار در داخل کشور ایرانه و پنجاه هزار هکتار در کشور آذربایجانه کشور همسایه ما هستش و حتما شنیدید کشور آذربایجان با اون پنجاه هزار هکتارش رفته ثبت کنه جنگلو و ما این یک میلیون هیزده پنجاه هزار هکتار دست رو دست گذاشتیم و هیچ کاری انجام نمی‌دید. البته آخرین من شنیدم اتفاقات خوبی داره یافت. توی این داستان که تکه شدن زیسکا، ما جاده سازی هم داریم که عملا پیوستگی جنگل رو از بین میبره تهدید بعدی ایجاد صد آبندان هست که متاسفانه در شمال کشور داره رواج پیدا میکنه با این که اونجا ما بارش بسیار زیادی داریم و عملا جنگل مثل یک اسفنج و توش نگه می‌داره. باز هم به هر دلیلی چه سیاسی چه حالا ناآگاهی، این بحث صدها ها هست و برای اینکه دریاچه پشت صد بسازن مجبورن که بسیاری از درختها را ببرند. شکار غیرمجاز هم هست که خب و همچنین شکار انتقامجویانه، اون عکسی که سمت چپ میبینید. گوزن بومی اون مناطق هست به نام مرال یا اسم خانوم که مرال هست، از این حیبون گرفته شده. و حالا خرس و پلنگی هم هستش که به واسطه حمله به حمله به دام در کشته شده. تهدید بعدی هم چرای دام هست و برداشت بیش از اندازه الوار هست. به صورت طبیعی این جنگل ها یه سری تولیدات دارند و اون همون الوار یا چوبی هستش که ما یاد می‌کنیم منطقه وقتی که قرار باشه بیش از اندازه ازش بردارید و این تهدیدات هم بهش اضافه کنید جنگل دیگه توانش رو نداره که خودش رو حفظ کنه و همچنین یه سری تهدیدات دیگه هم داره مثل آلودگی و زباله چون می‌دونید توی شمال ایران دفن زباله یک موزله بسیار بزرگی هستش خب با این پیسامینه من شما رو می‌خوام وارد فضای پرنده کنم ما برای اینکه یک گزارش پایه ای داشته باشیم در خصوص پرندگانمون این مطالعه رو انجام دادیم از طرف پروژه مدیریت جنگل‌های خزری و اینکه بدونیم این وضعیت زیستگاهمون به چه صورت هستش آیا به ها میره یا سیر خوبی داره و نهایتا اینکه مناطق ارزشمندمون رو برای تنوع زیستی پیدا کن برای این کار ما چهار تا پایلوت داشتیم از غرب پایلوت فریورود زیلکی رو توستان گیلان بعدش دو هزار, هزار. منطقه که آشنا هست بعدیش توی بلیران نزدیک آمل هست و بعدیش هم منطقه چلچای توی گلستان این چهار تا پایلوت رو انتخاب کردیم تقریبا 120 هزار به خاطر اینکه ما توانش رو نداشتیم توی 1.850.000 هزار اکتار کار مطالعاتی انجام بدیم Uh, یه سری نقطه ثابت می، نقطه می‌بینید اینجا حالا زرد و قرمز این نقاطی هستن که ما uh, به ما از قبل داده شده بود و ثابت هستن اینجا بودن و اطلاعات مختلف ازش برداشت می‌شد ما برای اینکه uh, بدونیم که چه پرنده‌ای دارن وارد این نقاط می‌شدیم و اطراف اون نقطه رو تا شوهای 500 متر uh, هر پرنده‌ای که بود در واقع ثبت می‌کردیم با تعدادش و نهایتاً تا بفهمیم که وضعیت اون نقطه چه جوری هستش خب اما برای این کار ما بازم مثل همیشه ای نداشتیم که پرداخت کنیم بر همین از نیروهای داوطلب استفاده کردیم این گروهی که شما می‌بینید بزرگترین گروه پرندنگری در ایران بودش که بعد از انقلاب به صورت داوطلبانه یک کاری رو انجام داد و اونم بررسی پرندگان بود که تقریبا 24 نفر بودن ما برای این کار از روش استفاده از صدای پرندگان استفاده کردیم. به خاطر اینکه این کمک میکنه تو جنگل دیدن پرنده اون هم وقتی که روی شاخ‌های بلند بشینه خیلی دوشوار هستش. صدا میاد. کسی میدونه چیه؟ قدر که بچهر همیزد پهلو بر درگه و او شه نهادندی رو دیدیم که بر کنگرش فاخه ای بنشسته همین گفت که کوکو کوکو کو. و یا این پرنده ای که کس می‌دونه چیه؟ کدوم پرنده چه‌چه میزنه؟ بله احسن، این بلبل هستش. بلبل از فیض گلام و سخن ورن نبود، این همه قول و غذر طبیع در منقارش این پرنده هستش. پس ما با صدا تونستیم این پرنده ها رو شناسایی کنیم و نهایتش چی به دست دو ما فهمیدیم که کدوم پرنده‌ها خیلی کم کدوم پرنده‌ها زیاده. این اینطور پرنده‌ای که می‌بینید سمت راست من سمت درسه دیگه دارخزک هست که پرنده بسیار کوچیکی هستش از روی شاخه درختان دنبال حشرات می‌گرده و این دارکوب سیاه که قیافش شاید خیلی رو نشون نده از یه کلاغ بزرگتر تقریبا و خیلی پرنده‌ای هستن که بسیار کمن پس ما توی این مطالعه هم فهمیدیم کدوما خیلی کمن این پرنده اسمش چخلی سک خزریه از اون پرنده هستش که در هیچ جای دنیا نداریمش فقط تو جنگل های ما هست و همون جنگل های یعنی جای دیگه ای از دنیا دیده نمیشه توی این مطالعه ما فهمیدیم که تعدادش چقدر هست و کجاها پراکندگی داری متعجه شدیم که فراوانترین پرنده هامون توی جنگل های خزری ها هستن کدوم از همه بیشتره حالا کدوم از همه کمتر هست؟ حالا این نموداری هست که تاعدی توضیح میده و نهایتا همونطور که گفتم تونستیم پراکندگی اینا رو به دست بیاریم یعنی که این گونه ها کجا ها هستند توی به وابستگیشون به کدوم جنگل‌ها بیشترن اگه ببینید یه دوست تا نقطه برای این دارخزر هست فکر یک یه نقطه هم برای این دارکوب سیاه یعنی فقط تو همون نقطه ما تونستیم پیدا کنیم ولی برای این دوتا پرنده خیلی از نقاط ما این دوتا بودن و حالا دلیل فنیش هم این هستش که این دوتا پرنده توی هر اکوسیستمی از جنگل دیده میشن ما میدونید که تراکم جنگل همه جا یکسان نیست یه جاهایی شاید 25 درصد پوشش گیاهی باشه یه جاهایی تا 90 درصد میره اون جاهایی که عرصه بازتر هست این دوتا بیشتر دیده میشن اون قبلی کمتر هستن ما فهمیدیم که این پرنده این چه کلاغ ابلق هست که دوستان آشنایی باش دارن. اون جایی که جنگل بهتره فقط یک جادی میمش چون وابسته به انسانه. اما اون جایی که عرصه پر از آدم هست تو اغلب نقاطش تونستیم این پرنده رو پیدا کنیم. خب حالا ما برای این که این چه نتیجهی برای ما داشت ما اومدیم با این کار یه سری اطلاعات به دست آوردیم و بعدش اومدیم یک آموزشی داریم میدیم به مردم و جنگل نشینان و جنگلوانان که اولا از اناسور گیاهی نگهداری کنن این دو تا درختی که میبینید بهش میگن خشکدار یعنی درخت مثل بقیه موجودات یک عمری داره و وقتی که عمرش تموم میشه از بین میره اونتا از بین رفتن نه اینکه ه در واقع عملکردی تو اکوسیستم نداره. تازه زندگی بعد از مرگ شروع میشه و اون جلب بسیاری از حیواناتیه که وابسته هستن به این درخت. تونستیم به مردم محلی و همچنین جنگل‌بانان توضیح بدیم که چقدر اهمیت داره که درختان کهنسال توی جنگل بمونن و لزوما با تبر و نمیدونم آره سوراخشون نریم چون تازه جنگلی که به قول ما بالغ میشه کلی از حیوانات به خودش جلب میکنه با همین در واقع آموزش تونستیم یه مقداری این رو پیش ببریمون تو در حد همون 120 هکتار کار بعدیمون بود که بیایم تمام زینفعان جنگل رو دور هم جمع کنیم و ازشون بخوایم که ما میخوایم مدیریت در حفظ تنوع زیستی داشته باشیم شما چه کمکی میتونید به ما بدید و از شما چه از ما چه انتظاری دارید این رو توی این پروژه تونستیم انجام بدیم و نهایتاً اینی که تونستیم یه سری مناطق رو معرفی کنیم که ارزش حفاظت بسیار بیشتری دارن و نیاز نیستش که حالا همه جا رو ما مورد حفاظت کنیم چون رو داریم ن نیروشو در پایان ارائزم خدمتتون عرض می کنم که هر چیزی توی این جهان ارزشمند حتی توی کشور ما هم ازش قاعده مستثنا نیست و شیخ مبعود شبستری میگه اگر یک ذره را برگیری از جای خلال یابد همه عالم سر و پای امیدوارم توی این <تصفح> زمان 17 دقیقه‌ای یه مقداری ذهن شما رو به این سمت مطالعاتی که شاید خیلی ازش نشیده باشید رهنمون کرده باشه. ممنونم.